بسم الله الرحمن الرحیم سلام و درود خدمت دوستان عزیز ما این دو دفعه گذاشته راجب این تن چلمه بسرا چلیدی، وانه های چلیدی در صحبت کردیم و اینشالله امروز دیگه این بحث را خاتمه میدیم چه وارد مطل بشه دفعه گذشته اون صحبت مثل و مثال و این حرف ها بود و من دیگه تشار نمی کنم اون مسایر را صحبت امروز را شروع می کنیم با سخنی از شمس تبریزی در این باره چه وقتی از قصه صحبت می کنیم می قصه یه پوسته داره یه مغز داره و عبارتش اینه که را جهت اون مغز آورده اند بزارگان بهره بحر دفع ملالت مثل سه امیر ارتلوان رومی بخونید به این چه وقت بزارانی بکنید خوصدتون سر رفته خب هلا بریم که خونه دارن قصه رستم عشبوس می جن خب دفع است. نه مسئله جدیست اینجا دسته را جهت اون مرد آورده بزرگان نزد بهر دفع ملالت به صورت حکایت به صورت حکایت برای آن آورده تا اون غرض در آن بنمایند. غرض از حکایت معامله حکایت است نه ظاهر حکایت چه دفع ملالت کنی به صورت حکایت بلکه دفع جهل کنی صحبت های امروزمون در زیل همین مطلبی بوده که از شمس تبریز خدمت دخوندم مولانا میگوید ای برادر که تون پیمانه ایست معنی ان وی بسان دانه ایست نیتنان افسانه ها بشنیده ای همچه شین بد نقش آن تفصیده ای وقتی در بازی شطرند سخن از خانه های شترند می رود معلوم است که خانه در اینجا معنی مجازی و استعاری دارد چارگوش را چه مهره درون جای دارد خانه می و این نه خانه واقعی است که باید قباله داشته باشد و طریق تحصیلش روشن باشه اچه آیا این رو معامل کرده خریده یا از عرض گرفته. این صحبت ها در باره خانه خوب درسته ولی در باره خانه شطرند خارج از این ببین گفت در شطرند چین خانه رخ است گفت خانه از کزاش آمد بدست ببین این مَتّ به خشخاش گذاشتن های پرد <تصفيق> گفت در شطرنج چین خانه ای رخ است گفت خانه از کجاش آمد به دست خانه را بخرید یا میراث یافت برای طریق تحصیل مال غیرمنگول یا باید این را بر مال بنگول هم, هم یا باید این را بخره یا به انتقال گهری میگویند در حقوق که عرض به من عرض رسیده یا خودم خریدنی عرض رسیده خانه شدرند نه خانه به عرض نه خانه, نه خانه خریدنی باشه فروخون چش کو سوی معنی چتافت مولانا در دفتر دوم اونجا چه قصه را به پیمانه تشبیه کرده که به تحولش و خودنمخاططون و بر اهمیت محتوا یا معنا تاکید ورزیده است که سه کوتاهی نقل میکند به این مضمون که عیسی و یحییا دو تا پیغمبر در بطن مادر همدیگر را سجده بردند اونگاه از گول معترز میآورد که مادر ایسا و مادر یحیی اصلا یه را ندیده بودند چطور ممکن است جنینی که در ششم اونها بود همدیگر را بشناسند و به همدیگر سجده برند این اعتراضی پوسته قضیه را هدف قرار داده مولانا به دو اون اعتراض را جواب میگوید اول آنچه ملاقات مادر یحیی با مادر عیسی در عالم باتن بود نه در عالم ظاهر دیگر آنچه ملاقات مادر یحیی و مادر عیسی امری مربوط به پوسته قضیه است ربطی به معنی آن ندارد مولانا میگوید که سه زبان حال است و نظیر ماجراییست که به روایت شاعران در میان شم و پروانه رخ میدهد اونجا چه سعدی میگوید شبیه یاد دارم که چشمم نخفت هفته بوداشتم خوندم این بیت رو شنیدم چه پروانه باشم گفت چه من عاشقم جرب بسوزم رواست تو را سوز و آتش تراست هیچ کس در صحت و وساقت گزارش چه پوسته روایت است نمیاندیشد مولانا مثال دیگری هم میآورد. معلم نر میگوید ضرب از زید زید امر را زد شاجردی دیچی بیاموزد این رو مثال در کتاب های نحوی میارن برای چه فایل و مفعول وضعش معلوم بشه زربه زید و زربه فعل است زید فاعل است امر مفعول است بس این زید باید مرفوع باشه دارم. ام. چه مفعوله باید منصوب باشه این حرف که مال گرامره طلبه این چه نمیخواد گرامر یاد بگیره اصلا حواسش اینجا نیست تو این باو نیست ایراد میکند میگوید چه گناه عمر چه بود و زید چرا او را زد و همزوری چی را میشه زرب زربه زیدون امرن آخو زید چی بود؟ چی زد امر را؟ مجرم چی کار ده بود؟ <تصفيق> <تصفيق> معلم پاسخ میدهد که انزمله برای اخبار از وقوع امری نیست بلکه بیان مسئله اعراب است در کلام و تمیز فایل از مفهول شاجد همچنان اصرار میبرزد که استاد باید توضیح بدهد و بگوید که سبب ضرب امر چه بوده استاد جوابی میدهد که خالی از تنز نیست بگید امر را چجوری میمیشند در عربی در عربی امر را امرو مینویسند امرو امرو مینویسند امرو میخونند یه واو اضافه بر امر میدارن اونجا و میخونن امر خب استاد میبینید چیم به هیچ سرات مستقیم نیست خب به زبان خودش با اتباب داد میگه آقا این امر این یه واو رفته دزدیده این امر بوده یه واو دزدیده و از زید برای این توضیح شده کده سآل از پوسته گذیه و اصرار در باره آن به این گونه جواب هامون می گفتیم حکایت تعلیمی از طریق تمثیل و شبیه‌سازی عمل می برای اون مهم نیست وسایل و ابزاری که در این شبیه سازی به کار گرفته می واقعیتی خارجی باشد یا امری کاملا مزعور و برساخته زه وقتی از شام و مصر و مچه و بغداد یا سندریه و محمود و بایزید و و اینا صحبت میکنه. کنه آدم های اینا آدم های تاریخی هستن مهم نیست این اسم ها به اماچن جغرافیایی و اشخاص تاریخی یعنی واقعیت های خارجی ارجا کنم یا نه اصلا تو این وادی نیست فیلم سرگر گول و را به سلطان محمود نسبت می دهد سهت و سکمتنان نسبتی اصلا مورد نظر حکایت نیست او تنها نجران تاثیر یا عمل چرد که است و مراد از تاثیر و عمل چرد همان است شمس تبریزی معامله که چه خوانده است میگوید غرض از حکایت معامله حکایت است نه ظاهره حکایت در معامله معامله دارو میگه چه معامله دارو اینه چه در حال بیمار تاثیر بکنه و بهبود ببخش حالش رو اون اثری که از این دارو مورد نظره اون اثر معامله اون است اون اثر اون مهمه و الاخره اون این کلمه معامله هم از واجه های چدیدی شمس تبریزه تو ما گفتیم که در مصنوی ما میکوشیم از پشت اینچ شمس تبریزی از پشت اینچ مقالات نگاه بکنیم و ایراد گرفتیم برگذشتگان چه از شمس غفلت وردیدن اطلاع نداشتند. بعد از پشت اینه چه عربی مصنوی را خوندن حالا از پشت اینه چه شمس تبریزی مصنوی را باید و شمس در قصده میجه این باید نگاه کرد. <تصح> چلمه معامله از واجه های چدیدی میگوید این سخن هرچرا معامله شود کار او تمام شود جای دیجار میگوید چه بر این سر واقف شود و آن معامله او شود به صد هزار شیخی التفاط نکند با جای دیگر میگوید این وسیت یاد دارید که این سخن ما را باز گفتن نشاید معامله کردن را شاید در تمام این موارد واژه معامله ناظر به تحقق و نتیجه و عمل کرد امری است حالا نمونه های دیگری از خودشمز، از مولانا، از شیخ صفی اردویلی ما راجع به چلمه معامله داریم که نمیخوام اینجا دیگه وقت زایه بشه میخوام رد بشیم <تص> اون چلمه نقده حال چه مولانا گفت تقریباً به همین معنا معامله قصه است در حکایت معمولاً راوی و حکایتگر از گهرمان قصه جداست دو اما گاهی هم اتفاق چه راوی و گهرمان یه چی میشه بیماری چه حکایت حال خود با طبیب میگوید اگر چه است. اما از خود روایت می کند که خواب خود را بازگو می کند از خیشتن روایت می کند. حکایت حال خود می کند. مولانا این گونه حکایت را نقد حال مینامد به شبیده دوستان این داستان در حقیقت نقد حال ماست آن این حکایت گفته شد زیر و زبر همچه فچر آشگان بی پا و سر الله این حکایت نیست این نقد حال ما و این خوش ببین این معنی با اندک تغییری به صورتهای نقد حال نقد وقت وصف حال شده است در مولانو لازم آمد بازرفتن از این مقال سویون افسانه بهره وصف حال وصف حال است و حضور یار غار هر کش افثانه این حکایت نیست پیش مرد کار وصف است و این حکایت نیست وصفحال از تو حضور یار غار حضور از تو حضور یار غار یا میگوید هر چش افسانه بخاند افثانه است و چه دیدش نقد خود مردانه است پس نقد در مقابل افسانه نگده خود همونه چه معامله که چه گفت لازرم ما هر چه میگوییم اندر نظم هست نزد عاشق نقد وقت و نزد آگل داستان او داستان تلقی میکنه این چی؟ نقد وقت خودش تلقی میکنه و نقد یه چی از واجه های چلیدیه مولاناست که گفتیم جلسی بودشته این نباید با نقد به معنی کریتیک چه الان مصطلح ماست اشتباه بشه نقد وقت یا نقد خود به معنی حاصل و دستاورده این معنی نزدیک از به نقدی که در برابر نسیه مصطلحه یا نقدی که در برابر قلب به کار میرود ذر نقد ذره قلب روی پاچ بشو عیب بر آینه منه نقد خود را سره کن به ترازوی نکن، تو این سمسلی ترازو و آینه و مهچ این ستا از اون چیزایی شمس میجه شمس تبدیل بر میگرده این که این سطح درور نمیجم این تا نمیتونن طرفداری بکنند هواداری بکنند از به گول امروزی ها جناهی فشل نمیتونن بکنند مهج از رو در واسی نداره ترازو از چسی رودوازیه داره آینه هم همینطوره هر چه هست میشون میده از چسی رودوازیه داره چشمه هیوان بگوشا هر طرف نقد کنین گثه و افثانه را نقد شدنه این قصه. مراد از نقد کسنی تحقیقی آفتن و به نتیجه رسیدن آن است بولانا جایی دیجه نقد را در مقابله نقل بکار میبرد سخن ما هفته گذاشتن اشاره چردم به و تست مول خاص در مولانا سخن ما میفرماید در فی سخن ما همه نقد است و سخن های دیگران نقل است نقد در مقابل نقل به کوڑی برات و این نقل میگوید فرع نقد است نقد همچون پای آدمی است و نقل هم چون غالب توبین به ششل قدم آدمی این پای طبیعی آدم، اون ادا در آورده به پای آدم را از چوب درست شده نقل اون بحث های نظری است و تچار مباحثی است چه بستبندی شده و روش پرچسبی گذاشتند و این بسته های پرچسبدار در بازار راشان سینه به سینه دست به دست می جردند. این نقله این به اون اون به, این، این به اون, اون به با هم سر اینا با هم مشاعره دارن و باهشه و به هر شستایی می کوفن یکی جردم فرازت اون دیگری سینت رو اورد و عصبانی میشه عرق می سر این این فال سر این مانگولو ناغلهای از خودش چیزی نمی دوشه نقد اون چیزی که از خودش می دوشه ببینید ما قدیم در جامعه قدیم ما مثل امروز نبوده مسایر رفته آمد و اینطور من هم دارم توریست و مسافرت و این حرف ها اینجوری نبود یه آدم یه جایی متولد می شده یه محلی از یه شهر تا آخرون نشم همونجا بود مثل حالا نبود چه همه یه مرتب خیلی، مسافرت خیلی به ندرت در بین آمه مردم نه این صوفی ها بودن صوفی های جوان چه سفر اصلا توز برنامه کارشون بود برای این چهر به اون مرحله برو برسم قبلا یه سفری باید میشد کاری به اونا نداره نه جامعه آمه مردم آمه مردم اهل سفر نبودن یعنی وقتی یک چسی مستطیعی میشد، اگر میشد، جامعی فقر زده بود، این هم بود که پولم زیاد باشه یعنی حاج آقا میگودم، حاجی حاج آقا، انگوش نما بود دیگه من یادم نمیره که ما در آذربایجان وقتی بنده بچه بودم، من کودک بودم مم. مم. چفشه، لنگه چفشه اونهایی که از عرص ببور شرده بودن آرازدانگشمش این تورش بود یعنی وقتی مریضی فرسول گولند میگرفته هیچ چارهی نمیترستم بکنم اون چفشی که از عرص رد شده ببین <تصفح> از عرص رد شده اصلا یه چیز شوک غاده بود اون چفشی کسی را که از عرص رد شده می و بدون اینچه یه شک وارد می بدون بفهمه یه های با این چفش بشت می و این شک هیچ می شد اون شک موالجهش او می شدن خیال می شدن چه چفشیش کرد عرصدان گشت می شد بالی خیلی تعذیب نکنید ما در دو دوره کودسی هم رد شده بودیم زوان بودیم جه. چه محمد شاه اول باری چه رفت سفر اروپا چون ایشون برای تحصیل اروپا رفته بود در سویس. ولی خوب باباش آدم خیلی چیز بود و نمی داشته خیلی خیلی تحت به اصلاح نرفته بود، انجلستان نرفته بود تا وقتی شاه شد دروته شد انجلستان اول باری که رفت انجلستان و شاعر درباری اینجایش گسیده بود در صفحه اول اطلاعات جاب شد من یادم نمیره خیر مقدم خیلی مقدم ایشان شاهی چه لندن دیده این اصلا دیده لندن شاهی بوده بله به این نام یه شاهری بود چه معمولا شاهر درباری بود برای این چیزها شهر می ساب خدا بیامون زدهش بله م... این اول مطلع قصیدهش بود خیلی مقدم این شاهی چه لندن دیده ای اصلا مجب ممکنه عز خونم زبوتون که قدیه نگ دو نگ رو میگفتم قصه های اه. من رفیقی داشتم دوستی داشتم دوست فاضل شاعر خیلی آده خدا رحمتش بکنم این آدم اروپا نرفته بود ولی اندیسی و فرانسه بلد بود رومان های مخصوصا معاصر فرانسوی را خیلی, خیلی میخون خیلی. و این از روی رومان ها تمام این چیزای پاریس را بلد بود تو کدوم کافاهای روشنفش را جن میشن نمیدارم موزه فلان کجاست فلان هتل کجاست نداد خونه فلان نویسنده کجا ذات فن نقاش از را کدوم کافه میره اینجا بود بود دیگه اینجا ما یه کافه دوست داشتیم میرفتن اونجا یه چیز بود یه تابل این تمام این رو میشنا و من اصلا تعجب می کردم چه آخه تو چی نرفتیم لبا از کجا از اول همین پایین اینو خب ببینید نگل و نقاش این طالع میکنه با کسی چه رفته در پاریس در اون کافه نشسته و داره قهوه میخوره با فلان نقاش این تمام راه ها رو را بلده میگه بله کافه در فلان در فلان, روی فلان در کارتیه فلان تمام آدرس هاش هم درست میده و میگه چه رو چه ساعتی چه ساعت های از روز اون رو جمع میشن ولی اون آدمی که خورش اونجاست تار که ناق تو ناق ای ای از دز عشق تو جشتم چون مول من از ما گسه تو که سیمن بگو پس پس پس ساو عشق تو خوندم به جان تو مرا که افثانه جشتستم بخوان ببین مثلوی رو میخونیم رد میشید. میگه من افسانه جشتم تو مرا که افثانه جشتستم بخوان یعنی من در گالب افسانه صحبت کردم با تو مرا که افثانه جشتم این افسانه را چی میخونی مرا بخون مرا چی افسانه جشته ام بخون شمس میگوید شمس تبریز سخن با خود توانم گفت با چه از خود را در او دیدم سخن توانم گفت جای دیگر میگوید من سخنی میگویم از حال خود یعنی یعنی, یعنی خود میگوید و خود میشنود در درباره تفسیر قرآن میگوید شمس ای خواج هرچس تفسیر حال خود میکند و میگویند که کلام خدای را معنی میکنیم با جای دیگر میگوید از غیر حق تفسیر بشنوی اون تفسیر حال ایشان روید نه تفسیر قرآآن مولانا خود هم به همین نه به همین گونه میاندیشند مولانا ته میگوید ببین دقت کنی در این حرف مولانا در فیهمافیشه میگوید الذین آمنو و عمل الصالحات فلهم اجرهم مولانا میگوید الذين امنوا هر کسی تفسیر ایمان خود کرد و عمل صالحات هر تفسیر عمل خود کرد فلهم اجرهم هر آن اجر را تفسیر کرد که مصور وهم او بود شمس تبریز بود میگوید قهرمانان داستان های قران از موسی و عیسی و ابراهیم و نوح و آدم و حوا و اینها تمام اسم میبره این و ما دجال و خیر دجال در قران نیست ولی اسم دجال هم ورده همه اینها در خود توست همه در تو جمع هم آمد همه را در خود بینی خب مولانا چه میگوید مولانا میگوید موسی و فرعون در هستی توست. باید این دو خسم را در خیش توست ببین از پشت عینک شمس تبریز نگاه کردن در مصنوی مثلا میده یه جوری جه میبینیم موسی و فرعون در هسته توست باید این دو خسم در خیش دست جوز و درویش هست جمله نیچ و بد هرچه بده دجا یا خوبه خضره خضر و دجا فقره میکنه جمله در خیش هست جزو درویش از جمله نیچ بد هرچه نبود انتونین درویش نیست درویش در خودش باید ببیند هم خوبها را هم بدها را هم دجار را هم خز را در خودش باید ببیند اگر از این جاویه در قصه های مصنوی بنگریم چشمنداز کاملا متفاوتی را در برابر خود خواهیم دید چشمندازی که هر چه دیده می شود نقده حال وصفه حال حسب حال گوگنده داستان است مولانا میگوید شخصیت های داستان من اگر چه نام مختلف دارند اما مراد مقصود از همه آنها کسی جز خود من نیست در این صورت نزاع بر سر این که مادر یحیی یا مادر ایسا را دیده بود یا ندیده بود از میان برمیخیزد هم عرب ما در اون قصه عرب و سبو چه برای خلیفه ببره میگه هم عرب ما هم صبو ما هم ملک پادشاه هم ما هم عرب ما هم صبو ما هم ملک جمله ما یعفک آنها من افک تعمل در این معنا روشن میکند که نگاه تاریخی و بکارگیری معیار سدگ وچذم در داستانهای مصنوی چقدر پرت و نامناسب است موسی که در مصنوی سخن میگوید موسییی است برخواسته از اندرون مولانا فرعون نیان است این مولاناست که از زبان موسی و گاهی از زبان فرعون سخن میگوید و این همه زبان حال است و زبان حال همچون زبان رؤیا خارج از ابعاد زمان و مکان است بس که تو خاندم به جان تو مرا چفسانه جستستم بخان من در اینجا قدری به اتناب چرا که بعضی از محققان نامدار معاصر که خواستند با نظر انتقاد علمی در مصنوی نگاه کنند از توجه به معنی گفلت ورزیده و به اصطلاح در مقام متجیری از مولانا در آمدن ببینید سوی تعبیر نشه منظورم از این بزرگانی که اسمی برم ما ریزخار خان این بزرگان هستیم اینجور فشل تصور نشه که ما در مقام خدا نشده تخریب مزرگانی نه ما میخواییم بگیم که یه زاویه دیگری مغفور مونده یه زاو... از زاویه دیگری باید در مصنوی نگاه کرد. ببینید در مورد ابن عربی ما یک تجربه داشتیم و آمدن گفتن که اینو در صدد تخریب ابن عربی بودن نه بابا بسرد تخریب در کار نیست یه نگاه دیگری ساختو هم باید تحمل داشته باشی یه چطیه یه جور دیگری نگاه بکنه دیگر. ببینید مرحوم زرنکوب در, در جایی از سرنی خوشتا تو از سرنی کار فوقلاده ای کرده از اشتباهات مولانا سخن میگوید یه کلمه اشتباهات را او گفته و از های او باز تعبیر اوست چه ماهی حیرت هست او اه. حیرت می از آن جمله است ببینید ایراد از آن جمله است این چه موسا در جواب فرعون چه او را متهم به جادو جری می کند من به جادویان چمانم؟ ای وگی چدمم پرش میگردد مسیح موسی همون مسیح نی آمده موسی برو خود فرعون می کشه می کشه از دم من ببین یا موسی به فرعون می گوید اونسان بکشایدد فر شباب چه گشود اون مجده اکاشه او اون مجده اکاشه او باب اکاشه او اون صحابه پیغمبر اسلام آخه قرآن و موسی چه خبر دارن چه هنو نیامده یا از گول پیونبر اسلام میآورد که فرمود بگذارد ان سید از بسره و تبوچ در قرآن هست که چطبالله لاغلبن نعنه و رسولی ما پیروز خواهیم شد درست؟ خب در حدیث هم این هست دیگه همین مطلب اونتا مولانا از گول پیغمبر اسلام میگوید بگذرد این سید یعنی سید اسلام از بسره و تبووچ زنچ ادناس و الادین الملوچ خب مرحوم زرنکو بیرات جرفته چه آقا زمان پیغمبر چه بسره نبود بسره دوان عمر ساخته شد بسره ها کوفر ها بسره ها بسره نبود این چیه میگوید مولانا بی دکتی اشتباهات تاریخی اینا در چراغ مولانا در طرفتر این چه در جایی از گل پیغمبر نقل می کند چه میفرماید. من برای اینکه شما رو در وحشت نفس چلم شرح نفس اماره را نمیگویم و مثل ابو بچر ربابی تن میزنم. یعنی از, پردا، از پرداختن به اون از صحبت به اون شانه خالی می کنم خب ابو بچر ربابی محاصر مولان بود ترمتی <تصفيق> دار زمانه پیغمبر از گول پیغمبر این چیه آورده گفته <تصحنت> خوب گفته مولانا در اینجا پیغمبر را از زبان خود او با کسی مقایسه می کند چه گرنها بعد از او به وجود میآید آید خود را هر جد ملزم به اجتناب از این گونه دقتی ها ندیده باشد بعد از حرف های شمس تبریز و درست تعمل بکنی در اون حرف ها و اینکاس اون در مولانا چه هم در مسروی و هم در فی مافی فی بر هایی براتون خوندم آدم فشت میکنه چه این ایراد ها مثل ایراد های یه معلم دبیرستان میمونه چه از انشایه یه دانش آموز ایراد میگیره آبا کجای کاری؟ مطلب این عرف ها اصلا مطلب نیست ببید اون طلبه در قرآن گاری میخوان شغلتنا را شغلتنا را گلت در قرآن راه نداره ممکن نیست این شدر هست با تاغو تراشید جاشنرش شدرستنا گلت در چلام الهی راه پیدا نمی کنه. یعنی چیه؟ در اون فشت میخواهم چه علم و جمع اجار درست یادم باشه یه چی یه تنزیه چیز قصه قشنجی اونجا هست میبینید کیج... در چتابت قدیم ما رو در چتابت قدیم مثل جیم با یک نکته می نوشتن پر را مثل بیر با یک نکته می نوشتن در چطابت قدیم این دوریه مد به هم نمیذاشتن آب را مثل می اب می نوشتن آب که یک مد نمی داشتن آه. اون شمسی قیص راضی میشه که چه من یه بیتی نوشتم روی یک کاغذی یکی بود خیلی از آدم فاضلی بود از فوزلا بود در نفع هم خیلی معروف بود فران. من یه شعری رو در روی کاغذ نوشتم اینکه دنیا به مراتب رفتگی آخرت صد من آخر چه جهان گرفتگی آخرت دو بیت اینطوری می‌شه این حرامزاده جی جی به این نشون دادم گفتن این اخرجه هو این اخرجه آخرجه مثل اخرجه هو خونده میشه این اخرجه هو، این زمیر به کدو بر میشهده چه این رفت تو فش رو من فش شدم چه این میفهمه من دستش انداختم رفتم دو روز دیگه بیدم چیزی مفسرین و چیچه لایهی مفسرین دابود به احتمالات مختلف چه این فاعل اخرجه چیه وحه در آخر این اخرجه به کجا ممکن است برگرده احتمال اول احتمال دوم، تمام اینها ببین؟ غالب های ما اخرجه و خوندن آخر چه هاست؟ مولانا در فیه مافی در فصل سی و فیه مافی گثه دارد درباره بایزید بستامی با یزیچ او را در کودکی به مدرسه سبردن به مدرسه بردم تا فکر و نحو بیاموزد پرسید این فکر و این نهو از چیست گفتن از ابو حنیفه مال مول ابو حنیفه است و از سیبه و از امام نحویلون سیبه ویه امام ها هم نبو هنیسه گفت اینا به درد من نمیخوره حاضر نشد پای درس هیز استادی بنشیند بعد شهر خود را ترش گفت رفت رفت تا رسید به بغداد جنید در بغداد بود این رفت به معز این چه جنید را دید نعری زد گفت حاضافکرالله به سی اسمولانو آورده در فیم موفی درست مرحوم فرزانفر در تعلیقات نفیس خود بر فی موفی فی آدم کمی نیست و نمیخواییم از حقش فوقلا دست خود روزانفر اصن ولی از تضاویه داره نگاه میکنه ببین اون مهمه فرموده است روزانفر چه در این روایت مشکل وجود دارد چه با موازین تاریخی درست در نمی آید زیرا خب بحث هایی کرده به میکنم ولی چلمات او را تغییر نمیدم عبارات پروزنفر رو تغییر نمیدم بعضی هاش را میاندازم چه زیرا بایدید بستامی در سال دویست و چهار یا دویست و شست و یک او و سن او موقع وفات هفتاد و سه سال بوده و جنید به سال 298 در گذشته و بنابراین ما بین وفات وی و مرج بایزید پنزاته ها یا سی و سال فاصله بوده و هر چند جونید عمری دراز شده و جزو معمرین صوفیه به شما رست لیکن هر سال ولادت بایزید را چنو چه بنا بر گل اول سنه 157 و بنا بر گل دوم وفات به سنه 188 بوده در نظر بگیریم خواهیم دید که تصور ارادت بایدی که از طبقه اورا و از اقران سری سگتی خال و پیر جنید است به وی که طبقه ثانیه به شمار می رود مصبعد است ببینید دوباره و سه باره این عبارتهای استاد بزرگوارمون را بخونید ببینید چه دقتی به خرد داده سال وفات بایزید را استقصاد جرده اختلاف نظرهایی که در این باره هست با توجه به روایتی چه سن او را در موقع وفات 73 سال دانسته این حساب کرده رفته تا سال ولادتش را پیدا بکنه با یزید را در طبقه در اول جا داده اونگشی را در طبقه ثانی جا داده ببینید چه قدر تگلای ذهنی و چقدر کوشش با چه وصفات علمی این کار را کرده و به این نتیجه رسیده که این اشتباه تاریخی یاد من من این بوده در کنارش اشکال مرحوم فروزانفر از نظر تاریخی درست است ولی نظر تاریخی داشتن در حکایات مولانا ترت و نامناسب است همچنان چه سوال اون طلبه که وقتی در درس نحو از استاد شنید که ضرب زیدون امرن پرسید زید چرا را زد مجرم چه کاری کرده بود چه مستوزی به کتش خوردن بود سوال به منطقی و حقوقی درست است ولی نجرش منطقی و حقوقی در مثالی که برای تمییز فاعل و مفعول در درچه نحو آورده شده از پرت و نامناسب است گفت جانا ورد خوب آورده ای لیک سراخ دعا گم کرده ای مولانا در یکی از اناوین دفتر ششم مصنبی تفسیری از عبادت معروف از صوفی ابلول وقت میگوید می معنی آن نفی تقدم و تأخر زمانی است معنی آن نفی تقدم و تأخر زمانی است ماضی و مستقبل و ازل و عبد اونجا نباشد آدم ثابت و دجال مسبوک نباشد اول آدم بیاد آخر زمان دجال بیاد اول زمان با آدم شروع بکنه آخر زمان با دجال شروع بکنه در اونجا این بحث ها نیست چه این رسوم مولانا میوید چه رسوم در خطه عقل جزوی و روح حیوانی در عالم لامکان و لازمان این رسوم نباشد این عین عبارت مولاناست است خب حکایت های مثنوی از عالم لامکان و لازمان برخلاف حکایات تاریخ که ما در تار تو به زمان و مکان صورت میگیرد، تابع ضوابط و, و مهار های آن است می‌کنم که این جلسه را با این گفتهمررونا تمام بکنیم و انشاالله اگر با قی بود هفته آینده نطمه کشته ضرجر را دیگه دنبال میکنیم این مقدمات فکر می‌کنم که لازم بود برای اینکه مقدمان ناظر است بر کل مصنوی بر کل نگاه مصنوی اونجایی که مصنوی مولانا از زبان موسا عرب از زبان فرعون عرب از زبان هر عرب می جنه خودشش عرب خودش رفته در جلد موسا خودش رفته در قالب فرعون به داره حرف می‌زاری اونجا چه با در افتاده اونجا چه از انبیاء دفاع میکنه در مقابل ملحدی اونجا رفته در قالب یک ملحد اونجا میگه آها شما شما های نسی هستید شما هر جا آمدید این شومید هر جاش می‌یایید وای و ماتم و کامو همه میارید ببین رفته در قالب او این حرف رو میزنه اونجا که از زبان انبیا دفاع میکنه میجه این فالبت والا خود شماست میجه این شومی در خود شماست اونجا مولاناست حرف میزنه حواستون زم باشه بنابرای مولانا وقتی میگوید چه آقا ندار اون بچه‌ روابی فرون از قول هر چه مهم نیست مولانا هر میزنه ببینید این مشکلات این منطب خشاش گذاری ها به کلی منتفی میشه با این نگاه وقتی در بسابی نگاه میکنیم بیشتر از این چیزا بزه میتون نمیشینید خیلی ممنون